ببینید تا اینجای ای کار جمع های سالم رو خوندیم، مصنعر رو خوندیم، بعدش اومد جمع، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. شرایطی رو که کلمه باید نداشتم بتوانه رو جمع مذکر بس، اونارو خوندیم. شرایط جمع مؤنث هم خوندیم. م... توضیحاتی رو که در رابطه با اینا بود خوندیم. الان رسیدیم به جموع تکثیر جمع های تکثیر مکسر. جموع خودش بر دو جمع قلهت، جمع کثرت. جمع دلالت بر کم میکنه. از خود کلمه جم ما تشخیص می که مثلا نواغی که می گیم از رو یعنی ذراهای کم کمتر از ده کمتر استن؟ کمتر از ده موقعی که می گیم یعنی کمتر از ده غلام به این شکل ولی این خودش میشه چهار تا چی داره وزنداره که توضیح میده. جموع القلطی اینها رو در نحمیر خوندید هر چهار تا رو الامث نفس جمیش میشه انفس ذرا از رو در قواعد میگه گرچه اینا سمایی هستن ولی یک سری هم دارن سیف جمیش میشه اسیاف اینب اعناب تعام اطعیمه عمود اعمده غلام غلمه سبیه سبیه بیایید در قواعد توضیح میده بله جمع القلة جمع قلاد يصدق على ثلاثة الى 10 جمع القلة لا صداقت يكون بر 3 تا 10 موقعك ميگين جمع القلة شامل شندو چن میشه 3 تا خب مفرد دوك مثنا و از 3 وقد يستعمل في الكسرة احيانا البتهمين جام هذا هو غير من استعمال میشن گاهی موقع برای کسرت هم استعمال میشن. اوزان و مثلا در قرآن اومده اشهر سلافت و چرا؟ چون اشهر کمتر سن دلالت میکنه. کنه بله بروازم افقالش آورده دیگه بله خب بیایید أوزان جموع القلة أربعة وزنهاية جمع القلة تارتا هستن تارتا وزن داره ألف أفعول أف أول كهذا ما لمن نوشته أفعال يمكنني اشتباهات شافي زيادی داره ألف أفعول وإن جمع چه كلماتي مشه ويكون جمعا لفعلين لاسم بعضي گفت صحيح الأيني اصلاح کرده میگه این جمع اسم صحیح الان هست مانند نفس صحیح الچه هست این هست پس این جمع برای اسم صحیح الان هست مانند نفس که دمش میشه انفس او اسم یا اسمی که رباعی یا اسم رباعی یا اسم چی؟ مؤنس بلا علامه من نطق ألامت من نس نداري وقبل آخره مد وقبل آخره حرف مدحز ما ننده زراعة ما ننده شيء زراعة زراعة مبينين كل آخر حرفش ألف ألف مدحز لذا جمع اسم شيء الزروع الزروع أفعال ويكون جمعا لكل ثلاثيا لم يطرد فيه أفعال میگه افعال جمع هر ثلاثی میشه و یکونو بله دیگه اسم ثلاثی هست خطر این چه رو جمع نمیبندن بی شکل هر کجا اومد اسم و یکونو جمع لکل ثلاثی لم یطرد فیه افعال. میگه افعال جمع اون ثلاثی است که نمیتو... جمعشون نمیتونه افعال باشه چون برای افعال گفت که چی باشه مثلا گفت که فعل اسم صحیح این باشه مثلا در سیف سیف صحیح وسط ها هست یعنی نیست پس صحیحو نمیتونیم بر وزن افعال ببریم لذا بر وزن افعالش میبریم بر وزن چش میبریم اینجا در قاعده میگه میگه افعال جمع اون سلاسی های که اونها رو نمیشه به افعال برد اونها رو نمیشه جمعشون رو به چی برد؟ در افعال گفته بود که صحیح الان باشه صحیح الان هست یا نیست؟ نیست الیف و واب و یا حروف اللهم پس صحیح تون موتل هست نمیشه به افعالش برد پس بر وضعه چیش میوریم؟ افعال، افعال این یک بله اینا. اینا با چرا میتونیم به باب افعال ببریم؟ خاطری ای که سلوسیه لنیه قرید و سو چی مستیم؟ جان؟ لنیه قرید یعنی همیشه نمیتون نمیشه به باب افعالش برد نه. اونجا قاعده همیشگی نیست بله میگه اینب بخاطر این که بروزن فعل نیست بروزن مثل نفس مثل صف بروزن فعل نیست بروزن فعل, بر فعل هست بروزن چه هست فعل هست لذا جمش میشه افعال و در جیم افعالتون و یطریدو میگه این افئله این باب مترده هست فی کل اسم مذکرین. در هر اسم مذکری ربایین مذکره چی؟ چار حرفی قبل آخری حرف اومد قبل از آخرش هم حرف مده مد است. بیایید روی تعام و عمود در تعام علیف حرف مده مد است. ما قبل آخر هست در عمود هم مقابل حرف مده مد است. ما قبل آخر است. میگه ما, ما قبل آخر حرف مده مد باشه والرضائي باشي صحيح. والبالي ومذكر باشي طعام وعمود پس جمع شونيشه اطعمه اعمده اطعمه اعمده این مال قائده افئله بود پس اگر کلمه اطعمه ماشو اطعمه ماذا بگه بر وزن افئله باشي اون في الماضيه. یست نیست شش میان برای سالی عجیب این مسائل این بیابنیم انسان. بله. بله بله. چهارتا گروه از امثله هستن چهارتا وزن داره. دوتا هر دوتا دوتای مالی که هستن. آخرین وزن فعلتون هست. افعال در قرآن و مدعش احمال افعال هم در قرآن و است انفسهم دیگه به نظر شما افعیلتون آیا در قرآن و است یا نه؟ افعیده بالی افعیده فعلتون آیا فعلتون در قرآن و است یا نه؟ ومداه فتياتن فتياتن بودا فتياتن بودا بربهم در سوره كهف اومده انهم فتياتن امنو بربهم خب و فشنهون اومدان و سمع في الفاظ منها فتياتن و شيخه جمع اين جمع فتاو و شيخ خاصن که هر دوتا در قرآن اومده یعنی هم فتا اومده هم شیخ شیخ دیگه اومده است؟ نه اومده است؟ همین شیخ خالی میگن میشه؟ بله شیخ و بله در سوره یوسف اومده جای دیگه نمومده هست چه سوره نور که اونو بزنید با چی در یه سوره هست خب بریم جای در کلمات نگردی تو وقت میره پس بریم چار وزن میاد افعال افعال, افعال افعال افعال افعال افعال فعلتون علاقه یه موقعی نگید عدتون چون عدتون مصدر هست در اصل بوده وعدون بله و اون قاعده دیگه ای هست اما اینها بودن از جمع قلت که اینا رو در هر کتابی تا اینجای کار خدا رو